ا سوريه الزاريات بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم و ذروا فالحاملات وطرات فالجاریات یسرات به الله که بخشاگان دو با رحمت است سوگند به بادهایی که زرات میپراکنند سوگند به عبرهای سنگین و بارانزا سوگند به کشتیهایی که به آسانی به حرکت در سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم میکنند که آنچه به شما وعده داده شده راست است و روز جذاب و پاداش به وقوع خواهد پیوست. سوگند به آسمان با راههای روشنش که شما در اعتقادات مختلفید. هر که از قبول حق سرباز زمد از حق منحرف شده است. مرگ بر دروغ دروغگویان همانهایی که در نادانی و غفلت فرو رفتند. می‌پرسند روز قیامت چه زمان است؟ روزی که آنها را در آتش عذاب کنند به چشید مجازاتتان را این همان است که بدان شتاب می کردید حرمتگزاران حریم الهی در باغ ها و چشم سارها ها هستند آنچرا پروردگارشان داده است در یافت کردن. زيرا آنها ببلزین نیکوکار بودند كانوا قليلا من الليل ما ينهجون وببالاسهارهم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم و اندکی از شبرامی خوابیدند و سهرها در حال استخفار بودند و در انبالشان برای سائل و محروم حقی بود که ادا کردند در زمین نشانهایی برای اهل یقین وجود دارد همچنین در درونتان آیا نمی رزق شما و آنچه به شما وعده داده شده است در آسمان است پس قسم به پروردگار آسمان و زمین که این مطلب حق است آنچنان که سخن میگویید آن نیز محقق است آیا حکایت مهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟ هنگامی که او وارد شدند گفتند سلام ابراهیم گفت سلام قومی ناشناختند آنگاه پنهانی به طرف خانواده خود رفت و گوشت بریان گوثاله فربهی آورد آن را نزدیک آنها گذاشت و گفت چرا نمیخورید از آنها ترسی به دلش افتاد گفتند نترس و او را به تولد فرزندی دانا بشارت دادند در این هنگام همسرش جلو آمد و در حالی که از تعجب بر روی خود زد گفت من پیرزنی نازا هستم به همسر ابراهیم گفتم پروردگار تو این, این گفته است زیرا او حکیم و آگاه است ابراهیم گفت ای رسولان معموریت شما چیست گفتند ما به سوی قوم مجرمان فرستاده شده‌ای تا پاورای کلوخ بر آنها فروریزی هایی که نشان الهی دارد و خاص دهندگان نعمات الهی و گذاف کاران است سرانجام اهل ایمان را از شهر خارج کردیم هرچند در آن شهر جز یک خانواده با ایمان نیافتیم وان شهر را برای کسانی که از عذاب دردناک می چون عبرتی رها کردیم همچنین در ماجرای موسا عبرتی است آن هنگام که او را با دلیلی روشنگر به سوی فرعون فرستادی او با تمام توان از حق اعراض کرد و گفت موسی یا جادوگر است و یا دیوانه سرانجام نیز ما او و لشکریانش را گرفتیم و در دریا انداختیم حالان که قابل نکوهش بود و در ماجرای قوم عاد نیز عبرتی است آن هنگام که بر آنها باد مرگزا فرستادی بادی که بر هر چیزی که وزید آن را چون استخانی پوسیده کرد در ماجرای قوم سمود نیز عبرتی است آن هنگام که به آنها گفته شد فعلا تا چندی از زندگی لذت ببرید آنها از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و سرانجام انجام جلوه چشمانشان سائقه مرگبار گرفتارشان کرد. چنان بود که حتی نتوانستند بیستند و از کسی یاری بطلبند. همچنین قوم نوح را که قبل از آنها بودند حلاک کردیم. زیرا جماعتی زشکار و بدسیرت بودند ما آسمان را با قدرت برافراشتیم و آن را وسعت میبخشیم و زمین را وسیع و گسترده ساختیم و چه خوب گسترش دادیم و از هر چیزی یک جفت آفریدیم شاید ماهی پند و تذکر شما گردند ففیر الله این نی منه پس به سوی خدا بگریزید من از جانب خدا برای شما یک گشتار دهنده آشکارم همراه با خداوند بزرگ خدای دیگری را قائل نشوید من از جانب او برای شما گشتار دهنده آشکارم بدین هیچ پیامبری بر آنهایی که قبل از اینان بودند فرستاده نشد مگر آنکه گفتند یا جادوگر است، و یا دیوانه آیا یک دیگر را به اینچنین جوابی وسیعت کرده نه آنها مردمی توگیانگرند پس از آنها روی بگردان زیرا تو سرزنش نخواهی شد پند و تذکرده که پند و تذکرد اهل ایمان را سود میرساند جن و انس را خلق نکردم مگر برای آنکه بنده ام باشند من از آنها روزی نمیخواهم و انتظار اطعام خود را نیز ندارم زیرا این خداست که روزی همه را میدهد خدایی که قدرتمند و استوار است ظالمان را از عذاب نصیبی است مثل نصیبی که یارانشان داشتند پس با شتاب چیزی از من نخواهند پس واقعی بر کافران از روزی که به آنها وعده داده شده است توین للذین کفروا یومهم الذی یعد صدق الله العظیم خداوند بلند مرتبه بود از این کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و